یه شاعری شایدی این مضمون رو به شعر درآورده قشنگه اگر مولا ولی میشد چه میشد خلیفه گر علی میشد چه میشد ولی خاتم دوباره بینگین شد ادالت با علی خانه نشین شد صقیف ساعده ماتم شد آن روز نسیم و سهم شیعه قم شد روز دوباره بولهب آتش برافروخت در بیت النبی نبی از شعلهش سوخت سران توته با هم نشستن دل و پهلوی اسمت را شکستن هزاران دست بیعتگر کجا رفت وفا با آل پیغمبر کجا رفت اگر پیمان مردم با ولی بود اگر پیمان با آل علی بود نفرمان نبی از یاد میرفت نه رنج و زحمتش بر باد میرفت نه حق بیابر و مظلوم میمون نه امت از علی محروم میمون نه زهرا کشته میشد در جوانی نمی شد سیر از این زندگانی نه بازویش از تازیانه نه دفن او شبانه مخفیانه نه تیغ کینه در دست جنون بود نه محراب علی رنگین زخون بود نه خون دل نصیب مجتبا بود نه پرپر لاله در کربلا بود لذا روز آشورا حضرت زینب کبری سلام الله علیها جمعه بوده آشورا خیام ابي عبدالله را آتش زدند توی بیابونای کربلا میدوید فریاد میزد پدر و مادرم فدای اون کسی که خیمه هایش را روز دوشنبه آتش زدند جمعیت خیال کرد زینب در این استراب نعوز به لام معا مشاعرش رو از دست داده جمعه و دوشنبه رو اشتباه گرفته خود حضرت برای اینکه روشن کنه مسئله رو فرمود حسین رو دوشنبه کشتن امام مجتبه رو دوشنبه مصموم کردن علی مرتضی رو دوشنبه کشتن زهرا رو دوشنبه کشتن چون صقیفه بنی ساعده دوشنبه بود هش اول چون نهد معمار کج تا سر می رود دیوار کج